الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين ومعين المخلصين وحافظ الموحدين ونصر المجاهدين نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ونشهد أن محمد الأمين عبده ورسوله وسلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المؤمنون أوسيكم أولا ونفسيا الخافئة بتقوى الله وإطاعة أوامره وأنهاكم عن المنكرات والفواحش كما قال تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق ثقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز والذين في أموالهم حق معدوم للسائل والمحروم فربردقارا بسيار سيباس مزاري كمارو براهراس هداية نمودي وتوفيق حزور در اين مكان پاك رابما أرزاني داشتي فربردقارا باللطف وكرمت دعاها بنيازها يمارا بدرقاها بفزير و جوانان و فرزندان و آینده سازان من را نیز به این راه هدایت بفرما برادران لطفا جمع بشینید صففا جلو رو پر کنید صففا اگر فاصلشون کمتر بشه مشکلی نیست موقع نماز جا باز میشه تا برای برادرایی هم که تشیش میارن خواهرای دیگه اونام جاشون بشه تشید و جلو رو پر کنریزم خدا ختون بدهشه. امروز رو درباره یکی دیگر از تکالیف دینی مسلمان صحبت می کنیم که عبارت است از اینی که مسلمان برای رفع فقر جامعه خودش می کوشد و موظف است برای برطرف کردن فقر خانواده های نیازمند تلاش کند و در این زمینه بی تفاوت نباشد در این راستا خداوند در قرآن آیات فراوانی رو بیان فرموده است از جمله این که در ویژدی های مؤمنین در کنار نماز و روزه و صداقت و پیمان وفا عهد و اینها یکی از اون ها هم می فرماید است که مؤمن همش در فکر خودش نیست و فی اموالهم حق معلوم و والمحروم اونها در مالشون جوری که یه سهم برای لوازم و تحریر بچه یه سهم برای لباس یه سهم برای غذا و خورده خوراکی خانواده جدا میکنه یه سهمم در نظر میگیرد برای محرومین فقرا و نیازمندان در جامعه چرا چون خود به خود ناچار جبران و با فقیر الهی بگوییم در هر جامعه خانوادههایی و افرادی فقیر میشوند نیازمند هستند چه اینی که بگوییم درآمدشون به خرجشون نمیرسه و چه اینی که بگوییم نان آورشون از درد رفته و نانآور ندارند گاهی ما تصور میکنیم که اسلام فقر رو ستوده است و مسلمانان رو تشویق میکنه که فقیر بشن تا برم بهش و فقرا میرم بهش اما نه در تمام آیات آیات قران و احادیث صحیح پیانبر گرامی شما تعریفی از فقر نمیبینید تعریف کرده باشه فقر رو تمجید کرده باشه ستوده باشه فقر رو و اگر بحثی از فقر شده به دو دلیل یک نی... به توانمندان ثروتمندان دارایان جامعه رو تشویق میکنه که شما موظفی برای رفعین فقر اقدام کنید، گام بردارید، هزینه کنید، تلاش کنید. معجور میشید، خدا پاداش بهتون میده، خدا جاشو پر میکنه و الی آخر. و از طرف دیگر به کسانی که در فقر هستند تسلی خاطر میده و اونها رو سبر و مقاومتشونو بیشتر میکنه تا شیطان از فقر اونها سو استفاده نکنه اونها رو منحرف نکنه اونها رو شاکی به تقدیر الهی نکنه و بگه که شمای نیازمند اگر صبر کنی اگر تحمل کنی اگر در مسیر بندگی خداوند بمانی همون اجر و ثوابی را داری که اون ثروتمنده با ثروت خودش در راه مسید خداوند بندگی میکنه و فرمان بردار خداوند هستش پنامون در دعاهای فراوانی اللهم اینی اعوذی که من الكفر والفقر خدای به تو از کفر و فقر اللهم اینی اعوذی بک من الفقر والقلت والذلت خداوند از خاری، از ذلت، از نداری، از فقر به تو پناه میبرم. و وقتی دعوت انبیاء رو نگاه میکنیم، انبیاء مردم رو دعوت کردن در مسیر بندگی خداوند قرار بگیرند تا خداوند اونها را متمبل و از فضل و های خودش برخوردار بکنه. انجا که نو به قومش گفت ای ای قوم من شما استخبار کنید خدا رو طلب آموزش کنید بندگی خدا رو بپذیرید تا خداوند اموال بنی نعمت و های خود و نزولات آسمانی را برای شما بفرستد و این هدف مقمن است بلکه اسلام فقر را بیماری برای جامعه می دوند که باید اون رو مداوا کنه باید اون رو معالجه کنه و حتی برای اخلاق و ایمان آفت می داند که باید داروی اون رو بده و تا ایمان مردم حوز بشه تا اخلاق از فساد از فرق از فجور پاک بشه و راهای فرازانی رو خداوند برای علاج و معالجه فقر بیان فرموده است یکیش عقیده سالم و پاکی که اسلام دارد و اسلام به مردم میقبولاند بیان میکند که ای انسان ها همه شما بنده خدا هستید همه بنی آدم هستید همه از خواب آفریده شده اید فضلی ذاتی بر هم دیگر ندارید و هرگز کسی نیاید در جامعه این تفکر را ایجاد کند که عدهای باید فقیر باشند عدهای همیشه فقیرند و این تلقین بشود به عده که ما هر کاری بکنیم خدا ما رو فقیر میکنه، و از تلاش و از کوشش باز بیستند و ازدهی همواره ثروتمند و توانمندند و باید این گونه باشند نه به همه میگوید باید تلاش کنید و اون شست اخوت و, و همدردی هست که دین اسلام در میان ماها در میان امت خودش ایجاد میکنه که در هیچ امت دیگری این گونه نیست و انسان مؤمن با فکر و نیاز همساایش نگران می شود و در راه اون میکوشد و بی نیست. این اصلا اینجوری پرورده میشه مؤمن. دوم دستور به کار و تلاش که در دین ما، با عنوان وظیفه و مسئولیت به ما تلقی شده است خداوند می‌فرماید: فرماید عزیزان یکم جمع بشینید رای اون دوستان بشه اینجا،, اینجا خیلی جا بازه خدا خیلی تون بده جمع بشینید موقع جا باز می شه. در عقیده اسلامی در آیات داریم پیامبران به امتشون گفتند شما رو خدا از این زمین آفریده است و وظیفه آباد کردن زمین رو به شما گذاشته است خدا دیگه نمیاد خودش این کارو بکنه اینو به ما سپرده هو الذی انشأکم من الارض واستعمرکم فیها امران آبادانی رو ما باید با کار و تلاش با علم و دانش و کار تلاصم و بتنی بر علم دانش پی بگیریم و این هدف ما باشد و این در همه افراد یکسان نیست فردی توان بیشتری دارد فردی توان کمتری دارد و این به خانواده ما محدود نیست ما باید در از خود شروع کنیم و پله پله به اطراف خود برویم و آبادانی مادی و معنوی دینی و اخلاقی رو در اون ایجاد بکنیم فا این خود به خود کار میخواهد تلاش میخواهد امکانات میخواهد که ادا به ما داده است فمشو فی مناکبی ها و کلوم رزقهی و ایلیه النشور ای مردم به اطراف و اکناف زمین بروید از رزق و از فضل خداوند بخورید بیاشامید در راه درست به دست بیاورید و در راه درست مصرف کنید و کار ما نشستن نیست مشهور است که میگویند در آسیای جنوبی و آسیای غربی رو تاجران مسلمان به اونجا دین رو بردن و دعوت کردند چون در زمان اصحاب اونجا فتح نشد و این مسئولیت کار و تلاشی که در انسانهای مؤمن بوده برای تجارت برای کسب روزی حلال به اکناف زمین سفر کردند و دینشون هم بردن برکت دینی هم به اون محیط رسونده فقر دو گونه است. یک فقری رو داریم که ناچانی در جامعه ایجاد می شود سرفرست خانواده می میرد به هر نوع و این خانواده فقیر است. تقصیر خودشون نیست سرپرست خانواده امکان کار ندارد توان کار ندارد درآمدش کم است به مخارجش نمیرسد خوب همین شما حوادث اخیر رو شما نگاه کنید در همین واقع پلاسکو حدود 16-20 نفر آتش نشان سرپرست خانواده از بین رفت و این خانواده یتیم شدند. در ای در مرز هم عدهای برای دست آوردن نونی در این فضای سرما رفتند باری رو از اونجا بیارن این ورضهای چیزی رو بهشون بدند در این برف و در این یخ زدگی سرمای شدید یخ اند و تازه کفاف مخارجشونم نمیشد این خب یه فقریه و نگران کننده است و خواه نخواه وجود دارد در جامعه اما یه فقری دیگه ای داریم فرد ممکنه بر اثر تنبلی خودش این فقر رو برای خودش به ارمهان بیاره کار نکند، تلاش نکند در بر اثر سستی و در کار و تلاش این فقر رو برای خانوادهش ایجاد می کند و این غلط است و این مسئولیت دارد در بعضی جوامع شاید شما هم دیده اید. متأسفانه متاسفانه از به علت دوری از فرهنگ کتاب خدا. راحت خوری. آسان خوری. خوردن نانخوردن بدون کار و تلاش. این شده فرهنگ شده ارزش هر کی اینجوری باشه اردشی بیشتره در جامعه. اما همکه کار کنه، تلاش کنه، برای سر نون کار و خودش رو به دست بیاره این که اندما مثلا جایگاه و پایگاهی تو دل مردم و در بعضی افراد نداره و این غلطه، این فرهنگ دیلی نیست در زمان پیامبر گرامی رو، میخوام برای تصویر بکشم وقتی که پیامبر گرامی تشریف بردم به مدینه هجرت کردند مدینه شهری تماما فقیر بود تماما فقیر نه بندر تجاری بود نه جای تولید بود نه جای تجارت بود نه جای بازرگانی بود هیچ یک شهری بود جای زراعت اونم زراعتش فقط غالبا غالبا باغ خرما بود باغ خرمایی که خودش هم آب نداشت باید مردم میرفتن از چاله ها و برکه ها و اینها آب در می آوردن با کوله و با دست و گاهیم با حیوانات و با شتر و اینها آب رو می بردن می پای نخل تمام درآمد مدینه این راست وقتی پیامبر گرامی هجرت کرد به مدینه یک کجارت اندکی هم که با مکه داشتند اونم از بین راست با اطرافیان داشتند اونم کم شد جنگ هم که ایجاد شد برای اینی که نهزت پیانبر گرامی نهزت جدیدی بود جامعه در مقابل هر تفکر جدید مقاومت می‌کنه و اینها که انما پیانبر ضعیف میخواستن از بینش ببرن حمله می کردن اونو شکست بدن و نمیتونستن جنگ خیلی بعد روحوت خندق و, و اقلاخ و این جنگ ها هم خودتون می دونید. همه می دونن جنگ اقتصاد رو نابود می کنه. و از طرف دیگر برای مدینه هر چند باری از اطراف می آمد مهمان های فراوانی می آمدند. نزد پیانبر خدا برای مذاکره برای مباحثه برای گفتگو و حتی برای مسلمان شدن اون موقعا دیگه نه هوتلی بود نه رسولانی بود نه چیزی بود باید این پیانبر و این افراد و این اصحاب از این حیات پذیرایی میکردند و نون و خراف و خرد و خوابشو میدارد تا میرفت اینو کی انجام میداد همین پیامبر همین اسلامی که الان ما داریم و نمیتونیم با این دین خودمون رو رشد بدیم اقتصاد خودمون رو رشد بدیم همین اسلام اون مدینه رو کار کرد اون مدینه رو اونجوری کرد یه دولتی از درست کرد خیلی مهمه امپراتور ایران رو به جانه در آورد تا اقتصاد قوی نشه نمیتونه چنین دولتی این کارو بکنه اما کرد پیمبر خدا این کارو انجام داد. چرا؟ بلطف این دین به این قرآنی که در نزد ما هم هست اطنون نمونش ابو مسقود انصاری میگوید تازه اینم فراموش کردم بگم اون مهاجرهایی هم که از مکه رافته بودن مدینه همه نداشتن اموال و مایه و ثروتشون رو ببرن اونجا اگه بخوان سرمایه گذاری کنن همه هم فقیر بودن تو مسجد این صفه بهشون می ابو مسعود هم سوالی میگرد کنند رسول الله تعالی و آهو وسلم مسئولیت رو نگاه کنید. وقتی پیانبر گرامی ادعامران اوه صدقه ما رو معمول میگفت صدقه بدید. اینجا گفتیم تو خطبه ها بیان شده تو کتاب خوندید که پیانبر خدا مهمان میومد نون نداشت تو خونه بخوره می رفت پیش این صحابه می رفت پیش این صحابه می گفت چیزی داریم و می آورد و گایی وقتم معجزات پیانبر خدا می گفت یکم از اون شیره و چیتر کرد و قاطی کرد انقدر زیاد شد که همه خوردیم این واقعیت داره شهرشون اینگونه بود تجارتی نبود درامتی نبود ای نبود اما با این وقت پیانبر خدا می اومده از شاب طلب صدقه برای کرد راه دین برای پای پای حکومت اسلامی در اونجا می گفت ابو مسئول امساری میگه وقتی اومد از ما طرف سرخه میگه ما همه هیچی نداشتیم که می رفتیم کار تو بازار حمالی حمالی احدنا ایل سوقی یا احدنا احدون ایل سوقی فیو المرده می رفتیم حماله می بار این رو ازیور کله می کریم تا اونجا تا مجا تا به اندازه یه موش گندوم به همون می دادن تعام به و ابو مسعود انسالی و این لبعضهم و یوم لمئت الیف اما امروز مردم هزاران ستا هزار مقدین ها اینها دارند اما از براد رفع فقر در جامعه میبینی اون تلاش نمی با نمیکنند و پیامبر گرامی کار میکرد، نمیکد کار آفری یک مرد رفت از انصار نزد پیانبر خدا گفت ای رسول خدا یه پولی بهم بده فقیرم ندارم چیزی ندارم پیانبر خدا هم کجا بیاره گفت تو خونه چیزی داری چیزی که چندان نیاز نداشته باشی گفت یک فرشی دارم و یک ظرف آب ظرف آب اون موقع هم اشتماعا همین مسیوین بوده یکم قیمت داشته گفته برو بیار پیانبر خدا رف آورد تو بازار مزایده بذاشت گفت اید تر میفرشیم کی بیشتر کی میکره یکی گواملم من بیه در هم میخره به خدا گفت مزایده ای که الان امروز اقتصادیم روز بیشتر استید به امپری غرامی هم او مواجهه شد ساده کانه اما به خدا گفت کی بیشتر میگیره کی بیشتر میده یکی گواملم من دو در هم میدم گو بیشتر نیست نبود گو به دو در هم دو در هم او گرفت و گو یه در هم شوبده غذا و خوراک برای امبوزتون با یکیم یک تبر خرید براش با یکیشم و برو با این تیزوم از کوه بکن ببر بیاد و بفروشو بازار تا 15 روز بعد بیا بینم چه وضعی داری رفت هم این کارو کرد بعد از 15 روزم خیلی شاکر بود خیلی قدردان بود که فهمبر گرامی شما راه خوبی رو به من نشان داد مسئولین مسئولین و ماها حتی در هر جایی که هستیم اگر بتوانیم یک کار آفرینی کنیم یک کاری به دست کسی بدیم این رو بدونید این هم جزء اون کارهای نیکی هست که ما باید انجام بدیم و خداوند اجر ما رو خواهد داد و در چارچوب اختیارات خودمون توان خودمون ما باید کارآفریی کنیم. گاهی اوقات ما فکر سه ما یه عادت بدی داریم مسئولیت ها رو بین اون پارس میدیم آوا اون فردی که اونجا این کارو نمیکنه انجام نمیده شما باید انجام بدی این یعنی درسته برای نماز من میگم فلانی نماز بخونه. ولی اون چون نمیخونه منم نمیخونم این درسته این درست نیست وظایف و واجبات دینی رو نباید به گردن هم دیگه گذاشت شما باید برای اجر و سوار و اخرویو خودت راهای از عذاب اخرویو خونت خودت کار و تلاشو در خود انجام بدی دیگران هم انجام بدن خیلی خوبه اما اگر انجام ندادن این به معنای این نیست که شما هم با... میتونی انجام ندهید در جامعه اسلامی حتی زنان هم از کارمند نشدند ازیزان این رو بدونید زنان هم از منع نشدند بلی اولویت داده به خانواده اسلام به حفظ خانواده برای اینکه که خانواده فرو نپاشه اون, خا... اون بچه هایی که نیاز به تربیت دارند نیاز به محیط امن و امن دارند و بنیاد خانواده بیشتر با زن هستش اما در کنار اون واقعا فرصت دارن فرصت رزد برای کار و تلاش. و با هماهنگی و با مدیریت و با برنامه ریزی درست خیلی از این افراد میتوانند. خانم ها میتوانند کار کنند درآمد کنند. البته درآمدشون به جیب و خودشون بره. نبیجی به شوهرها. در زمان رفت گرامی اسماعه دختر عبو, بکر، عبو بکر که زن زبیر بود با زبیر کار میکرد تلاش میکرد در باغ در دان که داشتند در کشاورزی که داشتند و پنامبر من اش نمیکرد. و امروز هم و در زمان ما هم بود در مناطق کردنشین و مناطق دیگه هم حتما بوده اما در مناطق ما یه ستمی میشد زن هرچی کار میکرد به جیب خودش نمیرفت اما نه باور میکنید من به یک روستایی در زمان طلوهای رفتم برای ماه رمضان یه مسچدی داشتند واقعا از نظر دینی افت کرده بودند اصلا مسجدشون از نظر جسمی بود اما از نظر محتوا خالی بود متوجه شدم واقعا این افراد این روستا واقعا کار میکنند دان داشتن، کشاورزی داشتن خانم ها می رفتن، می اومدن. تو خونه هم یک چیه فرش بسته بودن هر موقع فرصتی داشتن به جایی که بشینن و خیلی معذره مخام از خانم های گرامی به فکر آرایش و لوازم خونه بودن نمی دونم بعضی چیزهای غیر ضروری می پای چیه فرش بافتن اما این نموندی در میان ما در جوامع دیگر این وجود داره. اما اسلام میخواد خانواده فدای کار نشه در کنار هم. شاید این سوالی بشه که جوامع دیگر در رفع فقر جامعه خودشون موفقتر از ما هستند یه مقدارشو رو میپذیریم. چون چرا؟ چون واقعا ما هم در فهم دینمون عقبیم و هم در اجرای دینمون عقبیم اما اونها هم مشکلاتی دارند الان در جامعه مثل ژاپن یکی از دوستان استاد و کارشناس میگفت انقدر زنها رفتن تو کار و خانوادهشون به نوعی چی شده؟ اصلا زن و مرد در میان اونها برای همدیگه جذابیتی ندارن الان مسئولین به فکر این افتادن آبا اینجوری فایده نداره یعنی جسمن وقتی میگاه می کنیم نمیدونی کدومشون زن کدومشون مرده زن آب شده از کار الان به فکر این افتادن یکانی کنن یه جذابیتی میان اینا درست بشه اما اصلا نه به قول محروف اون بینمکی که ما داریم که اصلا زن کار نمیکنه و نه به اون شوری که بیاد خانواده فدای کار بشه این یه مسئل است اگر در جای اهتمام کار زیاد داده میشه از اونور خانواده بنیان خانواده از بین رفته و از طرف دیگر اگر ما درست این رو دین رو بفهمیم و درست اجرا کنیم واقعیتش این از همه جلو میافتی و از بعد دیگر برخی کشورها برخی افراد غیر مسلمان اون دیدی که از فرد مسلمان داره برای آبادانی زمین خیلی فراگیره خیلی شامل و کامله دید افراد دیگر غیر مسلمان محدود به کشور خودشون اونها فقر رو فقط مهان از کشور خودشون بردارن واقعا اهمیت نمیدن آفریقا چقدر فقیره اما باور کنید کشور اسلامی با فکر دینی با فکر قرآنی ثروتمند و توانمند باشه همانند ملت خودش در برای فقر رفع فقر کشورهایی دیگه می امروزه امروز سازمان ملل میگه میگوید سالهای اخیر حدود 800 میلیون فقیر در دنیا وجود داره 800 میلیون کشورهای سروند من نه تنها در فکر برطرف کردن این فقر نیستن بلکه در فکر استثمار و استعمار اون ملت ها هستن میرم میبینم منابع زیر زمینی کجا بهتر دارد ببرن و در ظاهر یک بسته غذای بسکویتو نمیدونن اینا بهشون بدن و تصویرشو بگیرن و دنیا پر کنن الله فی اون العبد ما كان العبد فی اون اخیه بعد از کار و تلاش شما میدونید احکام زکاتی که در میان مسلمان ها وجود دارد واقعا اگر درست اجرا بشه فقر از بین میره اون آیات و احادیثی که در تشویق به زکات وجود داره مهنده همینی که براتون خوندم و خیلی هاشو اینجا شما شنیدید تشریخ میکنه مسلمان اگر مشکل مسلمانی رو برطرف کنه روز قیامت خداوند مشکلش رو برطرف میکنه اگر انسان م... مسلمان یاری بده مسلمان دیگر رو خدا یا او خواهد بود و همه اینها آنقدر که در دید ما وجود داره در جای دیگه وجود نداره اما اینها رو ما مطابق روز پرورش نمیدیم برنامریزی ریزی برش نمیکنیم خب این برنامه میخواد خیرها و الفاغها رو جمع کنی برنامه ریزی میخواد. کی فقیرها رو میشناسه هیچ کی؟ باید شناخته بشن. باید یه عده بیان پاجره بذارن این مسئولیت رو بپذیرن. باید فقرا لیست بشن. باید اولویت بندی بشن. باید نیازمندان مشخص بشن. باید ثروتمندان مشخص بشن. و این نیاز به نهادها و سیستمهای مدرن امروزی داره که ما واقعا اگر ما درست عمل کنیم قطعا می توانیم موفق تر از دیگران باشیم و در این زمینه هم میشه واقعا تقدیر و تشکر کرد از برادران و خواهرانی که در این مکان کوچک ما توانستیم در این زمینه گامی برداریم هرچند کافی نیست میشه بهتر شد اما باز خوبه انفاقاتی میدن عده جمع میکنن صندوق های وجود داره میبرن تو مغازه ها تو خونه ها و جمع میشه همین صندوق ها وقتی جمع میشه پخش میشه بین نیازمندان لیست نیازمندان هرکی بدونه میاره تحویل میده و کمک غیر از اون هم میدن و بحث شد که انشالله بتونن دوستان در بانک ها همین که کارش میکشیم اونم دستشون باشه که برادری همینجا میخواد دیگه زحمت نکشه بخاله بره بانگ و بریزه و تو صفو اینها همینجا بخواد کمکاشو بده و افرادی هم در این زمین توانمندن واقعا بیان ما وظیفه داریم مسئولی مسئولیت نماز روزمون باید و فقر جامعه تلاش کنیم بکوشیم واقعیتش اینه روز قیامت چه بحث اون خونه الان درست نه هستش و بچش میدونه تحریر کنه چه بچش اگر تحریر کنه یک دانشمند بزرگی ازش در بیاد اما نمیتونه واقعیتشین ما اگر توان داریم ما مسئولیم فقر جامعه بلکل میره روی گردن افراد جامعه مسئولن چرا؟ چون در هر جامعه ای خداوند اگر بعضی رو فقیر درست میکنه ناتوان نیازمند بعضی دیگر رو توانمند مستعد، ثروتمند درست میکنه خدا خودش می اون این فقیرها رو برطرف کنه فقرشون رو اما خدا گذاشته به آده ما ویدیو دو ای نیا توان این نیاز شما باید به فکر این نیاز باشید و باید اونها رو پوشش بدید برطرف کنید و اینم کار می خوادید تلاش می خواد. حتما همه بدونیم در هر حدی باید این تلاش رو بکنیم اگر ماه یه هزار تومنی هم دادی عزیزم نگو من ندارم این رو بدون حتما مؤثر خواهد شد از خداوند منن خواستاریم که ما رو توفیق عنایت بکند بتوانیم دینمان دین را خوب بفهمیم خوب اجرا کنیم جامعهمون رو رشد بدهیم فقر و نیازمندی رو از جامعه برطرف کنیم این رو تکلیف دینی خودمون بدانیم در این راه هر چی استعداد داریم به کار ببریم توانمندی توان ها من رو به کار بیندازیم و انشاءالله این واجب رو نیز مانند نماز روزه یک واجب خود بدانیم تا انشاءالله جامعه آن که خداوند از جامعه مسلمان انتظار دارد آن گونه صفتهای رو به خود بگیرد و خداوند از ما راضی باشد ان شاء الله نباهنی الله و ایاکم انتم الغافلین وحشرنی ویاکم تحت لوای سید المرسلین نستغفر الله العظیم فیا فوزا للمستغفرین لطفاً هنگام خروج ماشین ها از خیابان گل فروشی به فرجان وارد نشوند. چون یک طرفت و زاحمت برای همسایگان نجا میگردد. جزا کنم. الله. الله. آمین. آمین یا رحمت روحیمین. الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي هيأ لعباده أسباب الهداية ويسر لهم دروب الاستقامة الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والندامة للمذنبين ولا عدوان إلا على الظالمين وما نصر إلا للمؤمنين كما قال تعالى كان حقا علينا نصر المؤمنين إن الله على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير